اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين از و سلام و نبی ینا و آله تاهرین خدمت عزیزان دانشجوی خودم عرض سلام دارم و روز به خیل عرض میکنم الله که از نعمت صحت و سلامت کامل برخوردار هستید و انشاءالله که به لطف الهی از هر بونه گزندی و هم به دور مانید ما در درست های قبل خودمون استعاره رو تقسیم به اصلیه و تبعیه کردیم و مثال متعددی رو گفتیم و شرایط هر کدوم رو براتون بیان کردیم دو تا تقسیم بر استعاره دیدیم یک تقسیم مصرحه و تصریحیه مکنیه و بدکنایه دو نوع استعاره داشتیم بعد اومدیم گفتیم استعاره به طور مطلق یعنی چه مسرحه و چه مکنیه یا اصلیه است در اسم جامده یا طبعیه است یعنی در فعل و مشتق و حرفه بعد فیل و مشتقل رو برای شما مثال زدیم و مواردش رو هم بیان کرد. حرف باقی موند که انشالله در یه فرصتی براتون خواهم گفت الان نموزج رو میخونیم و مبحث رو تکرار میشه باز دوباره دقت کنید نموزجون از زنا قال رو. از زنا از ده رو بنا به. از زنا بنا به. ما حل بنا بنابه ما حل بنا به نگاه کنید یه دونه بنابهی توی مصره اول داریم یه بنابهی تو مصره دوم داریم این دوتا یک شکلند اما یک معنا نیستند به این در اصطلاح میگن صنعت جناس دو تا لفظ اومده آه. شکلشون یکیه معناشون یکی نیست چون بنابهی به یعنی به واسطه با ناب یعنی دندان نیش این حیوانات مار شیر پلنگ دو تا دندانه تیز در دو طرف دهانشون دارن که دندان نیششونه درست شد؟ اونا میگن ناب جمعش میشه به بنابهی اونها هم زمیره پس ترجمهش میشه چی؟ با دندان نیش خود اما این بنابهی این بنا یعنی برما بهی یعنی به واسطه او هر دوش جار و مجروره بنا جار و مجروره درست شو بنا جار و مجروره متعلق به حل است بهی جار و مجروره خبر لیت است پس این جناسه چون سد در سر. <تصفح> شکل همند بهش میگن جناس تام حالا این یک نکته تو این شعر خواستم بدانید بعد در سابق هم من برای شما گفتم که اگر یک کلمهای در آخر بیت بیاد مثل این بنابهی این در اول بیت تکرار شه یعنی جای ازنا از یا در وسط مصرای اول جای عددر یا در همین جایی که الان هست بنابهی تکرار شده یا در جای لایته اول وسط آخر مصرای اول اول مصرای دوم این کلمه که آخر هست تکرار بشه به این صنعت تو اصطلاح بدی میگن رد دوله اجازه نصدر رد و لعجوزه الاس صدره خب این یه صنعت دیگه است درست شو. نگاه کنید بیت رو معنا کنم حالا و یه حرف دیگه هم هست خواهم میگه از زنا از ز از یعنی گزید گاز گرفت نامفعولشه از زنا از دهر. عدهر یعنی این روزگار این روزگار ما را گزید بنابهی با دندان نیش خود این روزگار با دندان نیش خود ما را گزید پس توی این مثل چی گفته؟ گفته روزگار پدر ما رو در آورد با دندان نیشش ما را گزید اینو تو مصرع دوم از این گفته خودش رجوع میکنه یعنی گویا این حرفی که زده دقت برش نبوده دقیق نبوده ازش برمیگرده میگه لیت ما حل بنا کاش آنچه که حل رسیده است به ما کاش اونچه از بدبختی به ما رسیده بهی به واسطه روزگار بود یعنی روزگار نبوده کاش روزگار این کار کرده بود اول گفته روزگار پدر ما ردره بود بعد گفته کاش روزگار این کار کرده بود یعنی اگر روزگار این کار کرده بود ما دلمون نمیسو ودوم که روزگار زورش از ما بیشتریم ولی نگاه که میکنیم خودمون این بلا رو به سر خودمون آورد چون نیک نظرکت پرخیش دراندید گفت آزد نالیم که از ما اینکه شاعر متکلم چیزی بگه بعد از اون گفته‌ای که گفته رجوع کنه برگرده به نحوی که انگار اون رو بر اساس دقت نگفته اینو تو اصطلاح علم بدی بهش میگن صنعت رجوع صنعت چی رجوع یعنی انگار از اون بر مثل این که تو شعر امر شما تو معلقه میخوندید می گفت ان شفائی ابرتون نه ما شفای درد من اینه که خون گریه کنم من شفای دردم این است که خون گریه کنم ان شفایی ابرتون موهراقتو بعد میگه فهل ان در اسم دار سنمن موعولی آیا آدم در کنار اطلال رسم دارس این آثار با پوسیده بشینه گریه کنه محلی از اراب داره یعنی نداره یعنی چه فایده ای هست که آدم بشینه بر اطلال گریه کنه اول گفته ان عبرتون مهر آقا من تنها شفا هم در اینه که گریه کامل کنم بر این اطلال بعد میگه حالا اگر من بشینم گریه کنم فایده ای داره این صنعت رجوعه درست شد پس هم صنعت رجوع توش بود هم صنعت جناس توش بود هم صنعت رد و رج و توش بود اینا تو این شعره بود اما اونی که شاهد مثال ماست از زنا از دهر یزید ما را روزگار با دندان نیش خود با نیش خود روزگار ما را گزید با دندان نیشش خب اینجا اگر نگاه بکنیم دهر به چی تشبیه شده؟ به یک حیوان مفترس، حیوان درنده، گزنده درستو؟ به یک مارعبی یا یک پلنگی که با دندان نیشش میگزد و میدرد خب؟ بعد اونی که تو کلام هست کدومه؟ مشبه دهر مشبه هم به حصف شده که حیوان مفترس بشه یکی از خصوصیات اون که جزیدن باشه اونم با دندان نیش جزیدن با دندان نیش گاز گرفتن با دندان نیش از خصوصیات حیوان درنده است اینو برای دهر ثابت کرد میشه استاره مکنیه بلکنایه خود این اثبات لازم اثبات عز با نیاب عز با ناب هنیاب این گزیدن با دندان اثباتش برای دهر میشه قرینه استاره و چون دهر اسم جامده دهر اسم جامده میشه استعاره مکنیه یا بلکنایه از نوع اسمیه. حالا نگاه کنید پایین دیگه یه گفت. شبه ها از به حیوان مفترسه تشبیش شده دهر به یه حیوان مفترس خوب. بچه شبه چیه جامع؟ به جامع ایزا فی کلده. به جامع و و چه شبه آزار رسوندن در هر این. خب آزار در حیوان مفترس حسیه میبینیم نزا شده مشبه به ثم حض فعل مشبه به بعد مشبه به حذف شده که حیوان مفترسه و و علیه به شیء من لوازمهی و خبه عز به ناب گزیدن با دندان یه از خصوصیات حیوان مفترسه بعد استعاره مکنیه تون یا بلکه مکنیه یا بلکه خب این نوع استعاره مکنیه اصلیه مثال دوم رو نگاه کن خب حمل تو قالن متنبی گفته متنبی حمل تو الیه من لسانی حدیقتن سقاها الهجا سق یا ریاض سها بود سق یا از سها ببینید یک نفری که میرفته به مسافرتی میامزه، حج میرفته میامده، به جنگ میرفته پیروزمندان برمیگشته. رسم بر این بوده، الان این هست که دیگران میرن به دیدارش. و اونهایی که میرن به دیدارش، هدیهی تحفه با خودشون برای او میبرند. شد. این رسم دیگه متنبی میگه حملت تو الیه بردم به سوی او یعنی اون کسی که قصد دیدارشو داشتم حملت تو الیه. من لسانی از زبان خودم حدیقتن باقی رو یعنی حملت تو الیه من لسانی ای که نشعت گرفته بود از زبان من این منلسانی خانست از برای حدیقه صفتش بوده مقدم شده شده حال یعنی بوده حمل تو الهیه حدیقتن ثابتتن منلسانی ای که از زبان خودم به وجود اومده بود برای او برده خب حدیقه یعنی چی؟ یعنی بستان باغ یه ای رو میگه این باغچه این صفت رو داشت از زبان من نشعت گرفته بود براش بردم خ خب. این حدیقه به قرینهٔ منلسانی ما میفهمیم که باغ واقعی نیست چون باغ واقعی از زبان من که نشأت نمیگیره من یه باغ از زبان خودم درست کنم وردارم ببرم پس منظور از حقیقتا چیه قصیدت یک قصیده ای از زبانم به وجود آوردم ها قصیده‌ای رو از زبان خود چیدم و این قصیده رو که مثل حدیقه زیبا بود برای فلانی بود. یعنی یه قصیده گفتم و رفتم پیش فلانی خب اینجا چی به چی تشبیه شده قصیده تشبیه شده به حدیقه خب حدیقه زیباییش حسی و دیده میشه و رنگارنگ رنگ است شده ما قصیده شده قصیده شده قصیده شده درسته حدیقه به جاش نشسته درست قرینه چیه حمل تو الهه من لسانی از زبون خودم اینو برداشتم بردم قرینه است دیگه من لسانی قرینه است چون حدیقه از زبان مشبه هست شده مشبهان به به جاش نشسته میشه استاره مسرحه و چون حدیقه اسمه به معنای بستان لذا میشه اصلیه حالا نگاه کنید شبه هم از من به جای شعر گفتم چی؟ قصیده یعنی شبه هده القصیده تو به هدیقتن حالا قصیده به حدیقه تشبیه شده جامعه چیه؟ به جامعه جمال فیکله جمال در کدوماش مشهوره و ملموسه خود خب در هدیه، همه می‌بیند. شد مشابه است. سوم عضوی از علف ضد داله ال مشابهی بهیل مشابه، استعاره و تصویه یا تن اصلیه استعاره تصویه اصلی است. برای هم می‌دهند. این تمام شد. این سعاها، الهیجا، صد یاریازه سهایبو، این جمله سفت هدیه است. جمله بعد از نکره میشه صفت یک باقی از زبان خودم چیدم و برای او بردم باقی که سقاها آبیاری کرده بود او را کی آبیاری کرده بودیم این باق را این باقی که من از زبان خودم جدا کردم بردم ها این باقی کی آبیاری کرده بوده الهجا هجای یعنی عقل الفلام داره یعنی هجایه یعنی عقلی آبیاری کرده بود این باغ را عقل من از زبانش یه دونه باغچه کرده برده برای فلا این باغچه رو کی سرسبزش کرده بوده آبیاریش کرده بوده عقل او عقل او باریده بوده به زبان باغچه درست شده برده سقاها الهجا سقی ریاض این مفعول رو مطلقه مثل آبیاری کردن باغات را از سحائب ابرهای آسمان این سقی ریاز از سحائبو سقی مستره ریاز مفعولشه از سحائب فائلشه مستر معمولند یعنی 90 درصد اضافه میشه به فاعلش مفعولش بعد منصوب میاد مثلا اینکه میگن ضرب زیدن امرن ضرب زیدن امرن شدید این ضرب زیدن یعنی زدن زید امر را امرن مفعول اینجا به خاطر اینکه میخواست قافیه شعر درست بشه که صحائد درستش کنه مستر رو اضافه کرده به مفعول ارضیا فائل و بعد مرفو آورده یعنی اصلش باید میگو سطح از سحائب ار ریازه. مثل آبیاری کردن عبرها باغات رو این عقل من هم زبانم رو آبیاری کرد یک باغچه رو ما از او چیدیم و برای فلانی بردیم اون نکته نحویش رو گفتن الان شاهد سر سقاها الهجا آبیاری کرده است این باغ را عقل من اینجا هجا تشبیه به چی شده هجا تشبیه شده به ابر آسمان هجا عقله عقل که آبیاری نمیکنه وقتی میگه آبیاری کرده عقل من پس عقل تشبیه شده به ابر به سحاب تشبیه شده خب جامع چیه جامع اثر نیک گذاشتند خب عقل اثر نیک داره باران هم اثر نیک داره ولی باران اثر نیکه سی آدم میبینه گلوبوت در میان بعد ابر حذف شده یکی از لوازم خاصه ابر چیه سقا آبیاری کردن اینو برای عقل ثابت کردیم. همین که گفته آبیاری کرده است این باغ را عقل من ما میفهمیم عقل تشمی شده به عبر آبیاری کردن که از خصوصیات عبره برای عقل ثابت شده میشه اصاره مکنیه و چون هجا الهجا اسم اسم جامده میشه اصلیه حالا نگاه کنیم شب به ها الهجا و حوال عقلو به صحاب به جامع تأثیر حسن فیکلن هر دو اثر نیک میگذارن و غوظ فعل مشبه به سهاب حرص شده و روم ازایلیه به شیء من لوازمهی الخواسته بعد اشاره شده به چیزی از لوازم خاصش و هو سقاب و اون هم عبارت است از سخاب استعاره استعارت و مکنیتون اصلی در خب تا اینجا همش اصلیه بوده حالا مسردهه اصلیه مکنیه اصلیه خونده با گفتیم اصلیه هم بیشتره دیگه حالا پایین نگاه کنی هاشیه یک همون نکته نحوی منو رو بسارد ار ریاض مفعولم بهللمستر و خوبه سرقی سرقی مزافون و ریاض مزافونه لگی لفظا مجرور محلم منصوب مفول به و اصل کلام اینطوری بوده سقی از اب ای به ولی به خاطر اینکه که قافی شعر در بیاد گفته سقیر ریاض از سها تمام شد بریم سر مثال سوم. مثال سوم میگه و قال آخر و یو خاطب شخص دیگری گفته و مورد خطاب قرار داده پرنده ایران قال آخرو یعنی آخر یو با که مورد خطاب قرار داده تا پرنده رو چی گفته انت فی خزارا زاهکتن من بکائل آرزلحتنی انته فی خزارا زاهکتن من بکا ال آرزل انت که داره به اون پرندهه میگه فی خضرا این خزراء صفت جای موصوف نشسته یعنی فی حدیقتن خزراء فی حدیقتن خزراء زاهکتن صفت دومه برای اون حدیقه خضرا صفت اول ظاهری صفت دوم مرگ متعلق به ظاهر است یعنی گریه کرده آرز یعنی عبر عبر حاتم یعنی فروریز حبری که خیلی باران داره فروریزه اون لغت رو معنا کردم پایین نگاه کنید میگه فی خضرا یعنی فی خضرا روزه حدیقه به یک منوست خزراه غیر منصرفه زاهی کتن میبینید مجدور شد آرز الحتن الارز الحتن یعنی اصحاب الارز الحتن هم صفت مشبه هست یعنی کثیر رول امتار اونی که خیلی باران دار فروری زند. به اون پرنده میگه انتر تو در باقی هستی تا اینجا ای چی نیست؟ خب اون پرنده تو باقی تو در باقی هستی سر سرسبز این خوب خب باش صفت باغ باق سرسبز تا اینجا ای چی نیست؟ تو در باقی سرسبز هستی باقی سرسبز خندان زاهی که اینجاست که باغ نمیخنده باغ نمیخنده باغ خندان باغ رو میگن باغ شکوفاست خندان بگید نیست مشاخص شد یا نه یعنی اگه گفته بود انتفیر خزرا ام مظهرت مظهره با زر وهای دو چشم یعنی شکوفا هیچی توش نبود پس مظهرتن تشمیه شده به زاهکتن اسم فاعل به اسم فاعل مظهره یعنی شکوفا خندان هم زاهکم یعنی خندان خندانم کسی که خندانه نوعی شکوفایی داره و ظاهرم حساب هم بشراش بودنشو چهله بازشو دندانهاشو میبین نظر زاهک بودن شده مشبه خونده. بعد مظهره حذف شده زاهکه جاش میشست قرینه چیه؟ فی خضرا یعنی فی حدیقتن خزراخ چون باغ مظهر میتونه باشه اما زاهک نمیتونه باشه خود مظهره تشبیش شد به که مظهره هست شد زاهکه جاش نشست این شد استاری مسردهه که مشبه شد مشبه جاش نشست بعد دقت کنید دقت کنید قرینه شم که فی خزرا یعنی فی هدیغتن خزرا کی ما میتونیم اسم فائل مظهره رو به اسم فائل زاهکه تشبیه کنیم کی ما میتونیم موقعی که بگید مسدرهای اینها رو تو ذهنمون به هم تشبیه کنیم ببینیم آیا اظهار یعنی شکوفا شدن امکان تشویر شدن به خندیدن رو داره شکوفایی رو به خندیدن تشبیه کنیم میگیم بله داره درست شد؟ بعد چون مسدرهاشون میتونه به هم تشویر بشه پس اسم فاعل اونها هم به هم میتونه پس میشه استعاره مسرحه طبعی در مشتق در شپفل یعنی اسم فد. نگاه کنید پایین شبححل اظهار اینو مرحله تو ذهن مستر به مستر. شبه به حل به ذهن مجه شبه چیه به جام ظهور بیاض کللت در هر دوتا بگید ظهور بیاض هست. اما ظهور بیاز در خنده بیشتره دندانها رو آدم میبینه غیر ثم استوهیر اللفظ الدال علی المشبه بهی للمشبه بعد مورو ذهک و بردیم گذاشتیم خو. این تا اینجا تو ذهنه تا این مرحله چون تو مصدره جامده اصلی است بعد ثمه نگاه کن مرحله دومه که تو خارجه ثم اشتق و منزهک به الاظهار اظهار زاهکه به معنی مظهره زاهکه مشتق شده به معناي مزهره. فل اصدارت و تصریحیت قرینه هم که گفتیم عبارت هست فی حدیغت فزرا چون حدیقه مزهر می شود اما زاهک بعد میگه این باغی که تو توشی که سرسبزه ای پرنده تو در باغی هستی سرسبز و شکوفا این شکوفا شده از گریه ابر فروریس شکوفاییش از کجا به دست آورده از گریستن ابر فروریس یعنی از باریدن باران باران خوب از باریدن باران این شکوفا شده به خاطر این من بهش میگم مل تعلیلیه یعنی لبکا به خاطره به جهت گریه کردن ابر ضروری منظور از گریه کردن اینجا یعنی چی یعنی باریدن دیگه باریدن ابر ضروریه یه بار ما میایم میگیم که گوش کنید اینجا نزول اگر گفته بود من نزول علا آرزه ها هیچ چیز دوش نبود نزول یعنی باریدن تشبیه بشه به گریه کردن در اینه چیه آرزه حتن یعنی آرزه حتن فروریز به ما میگه که این گریه به معنای باریدنه باریدن تشبیه شده به گریستن باریدن هست شده گریستن جاش نشه این اون میشه استاره مصرحه اصلی چون بوکا هم مستر جامده اصلی است قرینش هم زل هستن حتن نگفته منبکا زید چون زید میتونه گریه کنه اما عبر فروریز نمیتونه گریه کنه عبر فروریز میباره باریدن او تشبیه شده به بوکا این تو اینجا یه چوره دیگه هم میشه درست بکنیم ها؟ برگردیم بگیم اینجا عبر فروریز تشبیه شده به انسان انسان هزف شده یکی از لوازم خاصه انسان که گریستنه برا عبر ثابت شده همین اثبات لازم هم میشه قرینه میشه استاره مکنیه و چون آرز اسم جامده میشه استاره مکنیه اصلی پس اگه استعاره رو تو بوکا جاری کنیم قرینه بشه آرز میشه مسرحه اصلیه اگه استعاره رو در آرز جاری کنیم و بوکا بشه لازمی که از مشبه هم به ها براش میشه استعاره مکنیه اصلیه در هر دو صورتش اصلیه است نگاه کنید میگه که شب به حل اظهار و به ذهک خب اینو گفتیم بعد میگه و یجوزا ان نظره و صفحن انعازه الاستعاره و ان نجری ها اینو ولش کن این تیکه مال اون قبله که برگردیم بر توضیح میدن اون تیکه که الان گفتم رو بخون و شب به نزول المتر نزول نزول متر درست شد بلبوکا به جامع سقوط ما فی کنده سقوط ما فی ثم استهير النفس عل والدان على المشبه به للمشبه بل استعاره توصیفیه است یک و يجوز ان تجرا و مكنیه فل عارض که بگیم عارض تشبیه شده به آدمی به انسان انسان که مشبه به حد شده یکی از لوازم خاصش که بوکار باشه برای عارض ثابت شده و چون آرز اسم جامده میشه استعاره مکنیه اصلیه تمام شد اما توی اون قبلی که ما مظهره رو تشبیه کرده بودیم به زاهکه و استعاره تبعیه درست کرده بودیم در مشتق درست شد اگر یادتون باشه ما یه دونه تبصره گفتیم گفتیم هر استاره مصرحه تبعیه جایز در قرینش استاره مکنیه اصلیه درست کنیم ولی ما نمیگیم هر دو استعاره در عبارت هست نگاه میکنیم هر کدومش قشنگه اونو جاری میکنیم درست شد؟ اگر بخواهیم این کار رو بکنیم ما گفتیم مظهره تشبیش شده به زاهکه قری نشم حدیقتن خزرا. میگه حالا میتونیم توی حدیقه خزراغ استعار جاری کنیم بگیم باق سرسبز حدیقه خزراغ تشبیه شده به انسان انسان حذف شده یکی از لوازم خاصش که ذهک باشه خندیدن باشه گزاهی هستش این آوردیم برای باغ ثابت کردیم میشه استحاله مکنیه و این اصفات لازم میشه قرینه و چون حدیقه خزرا حدیقه روزه اسم جامده میشه مکنیه اصلی ولی خب الان باید نگاه کنیم ببینیم شکوفایی تشبیه بشه به خندیدن بیشتر زیبایی داره یا باغ به انسان خب معلومه شکوفایی با خندیدن تناسبش بیشتر است تا باغ با انسان بروش شد نگاه کنید و یجوز ان نظره و صفحن انها زیل استعاره نظره و یعنی نعرزه جایز است ما به طور کل از این استعاره دست بکشیم جایز از ما به طور کل از استاره بالا دست بکشیم گفتیم یکیشو جاری می‌کنیم دیگه او یجوز عن نظر و خب. جایز از ما به طور کل دست بکشیم از این استاره نظر یعنی نو اعراض کنیم از این استاره او خب. صفند این مفعول مطلق یعنی اعتراض نا به طور مطلق از این استاره دست رو کیشه. و ان نجریه ها فی غرینت ها. بعد بریم استاره رو در قرینش جاری کنیم فنقول شب بهد عرض و الخزرا روزه الروزه الحدیقه اون سرزمین سبز تشبیه بشه به آدمی به انسان سن فل مشبه به آدمی و روم زهی بشه من لبازه الخاصه و هو زاهی و تکونن استعارت و مکنیتن چون عرض روزه هدیغه اسم جامده میشه استعاره مکنیه اصلیه برای همین میگفتیم که او اولی بهتر خوب این تمام شد این بحث ما تمام و از این درس ما فقط یک استعاره طبعیه در حرف رو به شما قول دادیم که براتون بیان کنیم که خارج از کتابه که با یه مثال هم بهتون بفهمم. انشالله شما هم به من قول میدید که ساره مسلحه اصلیه و تبعیه و مواردش رو بخونید و حسابی هم بخونید تا انشالله روز شنبهیاتی کامل ولد باشید که من اول جلسه اون استعاره تبعیرم توی چند دقیقه جزء کنم براتون بگم شما یادداشت کنید داشته باشید خارج از کتاب درست شد بعد انشاءالله بحث شما به طور کامل در این زمینه تکمیل شده باشه اما بریم درس بعدمون درس بعدمون ببینید استعاره اگر این درس رو دفت کنید برخلاف موارد بسیار درس ساده‌ایه این این درس درست ساده است و میتونید خیلی راحت به خاطر بسپرید مثالهاش هم تکراری بشه براد بلیویسید استعاره به طور مطلق استعاره به طور مطلق یعنی چه مصرحه و چه مکنیه استعاره به طور مطلق یعنی چه مصرحه و چه مکنیه از لحاظ اینکه، که از لحاظ این که بعد از اتمام استعاره بعد از اتمام استعاره لفظی ملائم ملائم با همزه لفظی ملائم و مناسب با مشبه یا مشبهن به و یا هر دو در کلام دارد یا ندارد به مرشه مرشه ترشی به مرشحه من مجرده و مطلقه مطلقه مطلقه نگید به خاطر اون مرشه و مجرده که گاهی اوقات به غلط آدم میشنود تقسیم میشود ببینید استعاره مسرحه مکنیه بلدید وقتی تموم میشه یعنی میگیم استعاره تکمیل شد تکمیل شدنش به چیه به وجود قرینه قرینه که میاد استعاره تکمیل میشه الان یه مثال من بزنم این دو تا مثالو یادداشت داشت مثال‌های مثال های متعدد میخوام بزنم قشنگ پشت سر هم یادداشت داشت میکنی. یه مثال رعی تو یحمل و سلاح رعی تو اسدن یحمل و, و این مثال چیه؟ اصاره مصرحه رجل شجاع تشبیه شده به اسد درسته؟ رجل شجاع هست شده اسد جاش نشسته یحمل و سلاح هم قرینه نشه بعد از یحمل و سلا اصلا این نقطه سرخد اینجا استعاره تمام خب مثال دوم رأی تو رجلند رأیت و شجاعا شجاعم یوزم جرو یوزم جرو یوزم جرو زم جرا یوزم جرو یعنی می‌گویید قبلا نبودیم زر زعر زر که میگه ورد الفرات زعیره و نیلا زعیر همین زمجره است زمجره و زعره به یک یعنی قردید این مثال رعی رجلا رجلن شجاعن دیدم شخص شجاعی رو که میقرید. اینجا الان رجلن شجاعن تشبیه شده به چی؟ تشبیه شده به شیر شیر حضب شده یکی از لوازم خاصش که قرریدن باشه یوزمجرو رو آوردیم برای رجل شجاع ثابت کردیم اون شه مکنیه قرینشم قرینش هم همین یوزمجه یادتون باشه گردیم قرینه استاری مکنیه همیشه لفظیه است همو اثبات لازم مشبهان به برای مشبه خب این دو دوتا استاره الان این استارها بعد از اینکه تمام شدن هیچی ندارن حالا سه صورت ممکن است داشته باشن سه صورت ممکن است داشته باشن صورت اول یعنی صورت اول برای این دوتا مثال بعد از اتمام استعاره لفظی ملائم و مناسب با مشبهن به آمده است صورت اول بعد از اتمام استعاره لفظی ملائم و مناسب با مشبه به آمده است خب مثال یه کدشتی میشه؟ و مثالی یک کدش چی میشه؟ اینطور. رو رعی تو یحمل و سلاح رعی و یحمل و سلاح و یزم جرو و ای تو اصدن یحمل و و یزم زم جرم. یعنی چی؟ یعنی یه آقایی رو دیدم اصله به کولش بود یه شیری رو دیدم اصله به کولش بود و می گردید این گردیدن مالهت مشبهان به. یعنی اصده درسته؟ پس مثال شد رعایت و عصا دان یحمل سلاح و یوزم جرو تو دومی رعایت و رجولان شو یو یوزم جرو و یوکش عن آن آنیابه یوکش جرو یوکش جرو کش جرا یکشش رو ان اناببهی، انیاب ناب رو امروز خوندیم دندان نیش کشش رو ان اناببه یعنی دندوناشو نشون میداد، چنگ و دندون نشون میداد. چنگ و دندون نشون دادن از کیه؟ رجل شجاعه یا شیره شیره پس رعی تو رجلن شجاعن، یوزم جرو این قرینه و یوکش رو انن یابه ملاحب با مشبه و به اگر چنین باشد استعاره را مرشحه میگویند استعاره را مرشهه میگویند رشه یعنی تدویت کرد مرشحه یعنی تقویت شده تأکید شده درست شد مینویسید از آنجایی که جزء قویتر در تشبیه مشبه هم به هست این وقتی بنابراین وقتی بعد از اتمام استعاره لفظی بیاید که ملائم و مناسب با مشبهنبهه است تشبیه و استعاره تقویت و تأکید میگردد و به همین دلیل مرشحه نامیده شده است به این دلیل بهش گفتن مرشح. پس مشخص شد الان اولی رو رعی و اصدن یحمل و سلاح و یو بهش میگن مصرحه مرشحه دومی رو رأیت و شجاعا یزمجر رو و یو عن ان یابهی بهش میگن مکنیه مرشه مکنیه مرشح تمام شد حالا بریم سر مجرده هرگاه بعد از استعاره مسرحه یا مکنیه هرگاه بعد از اتمام استعاره بنویسید هرگاه بعد از اتمام استعاره مسرحه یا مکنیه لفظی بیاید لفظی بیاید که ملائم و مناسب با مشبه باشد ملائم و مناسب با مشبه باشد در این صورت در این صورت استعاره را مجرده مجرده می نامند مثل مثال یک دو یک رعی و اصدن یحمل و سلاح همون مثال قبلی رعی و اصدن یحمل و سلاح و یعز حکو خندیدن از خصوصیات رجل شجاع اصد نیست ملاحن با مشبهه رعی, یحمل و, و, مثال رعی رجلن یزمجرو. یزمجرو. و یحمل و سلاح و یزه مثال دوم. رعی و رجلن شجاعن یزم جرو و یحمل و سلاح میگورید و اصله دوشش بود این یحمل استلاح معادله با ملائمه با رجل شجاع یحمل استلاح و, و یحمل استلاح این اولی رو میگن مصرحه مجرده دومی رو میگن مکنیه مجرده مینویسید از آنجایی که بنای استعاره بر فراموشی مشبه است و ما با آوردن لفظ ملائم و مناسب مشبه و ما با آوردن لفظ ملائم و مناسب مشبه مشبه را در کلام ذکر می کنیم استعاره از تقویت و تأکید توهی می شود خالی می شود و به این دلیل استعاره را مجرده نامیدند مجرده نامیدند تجرید یعنی برهنه کردن خالی کردن لخت کردن این آری کردن توهی کردن مجرده چرا بش مجرده چون نمی آمد تشبیه خودش یه تقویت و تأکیدی داشت این اومد مشبه رو تقویت کرد تشبیه ما را از تاکید آورد پایین او را از تاکید توهی کرد آری کرد برهنه کرد خالی کرد خب چون در استعار جزء ضعیفش مشبهه و قصد اینه که مشبه تو کلام فراموش بشه ما وقتی ملائمه با او رو میاریم در واقع او رو داریم جا میندازیم لذا اصداره ضعیف میشه این هم قسم دوم. قسم سوم اصداره مطلقه بنویسید هرگاه هرگاه بعد از اتمام استعاره چه مسرهه و چه مکنیه لفظ ملائم با مشبه به یا مشبه در کلام یافت نشود بنویسید داخل پرانتز نوع علف پرانتز رو نوع علف و یا لفظ ملائم و مناسب با مشبه و مشبهان به هر دو در کلام یافت شود دو برانداز بنیستی نوع به استعاره را در این صورت مطلقه می نامند استعاره را در این دو صورت نوع اف و به مطلقه مینامند مطلقه یعنی رها و آزاد چرا بهش گفتند مطلقه چون نه مثل اولی تأکید شده مرشه است و نه مثل دومی تضعیف شده مجرد است مطلقه از تقویت و تأکید و از تضعیف آزاد هیچ کدام درش نیست دو نوع این مطلقه یا ملائم با هر دو را ندارد این میشه نوع الف یا ملائم با هر دو را دارد میشه نوع ب حالا نوع علفشو مثال بزنیم یک و دو یک رعی تو اصدن یحمل و سلاح. تمام رعی تو اصدن یحمل و سلاح استاره مسرحه مطلقه از نوع علیه دو رعی تو رجلن شجاعن یزمجرو رعی تو رجلن شجاعن یزمجرو تمام مکنیه مطلقه بعد از اینکه که تمام شده چیزی که ملائم با مشبه باشه یا ملائم با مشبه به باشه در کلام نیست این نوع علفه مطلق است نوع به ب یک رائیتو اسدن یحمل الصلاح رأیت اسدا يحمل, سلاح. يحمل سلاح تا اینجا استاره تموم و یزمجر و یزحك و یزمجر و یضهکو یز یزمجرویی به تنهایی میآمد میشد مرشهه حکوی به تنهایی میآمد میشد مجرده حالا هر دوتا اومده هم مثبت داره هم منفی مثبت و منفی از هم کم میشه میشه باز دوباره مطلق یعنی آن مسلحه مطلقه است از نوع به و عسدا یحمل سلاح و یو زمجه و یعز حکو دو, دو رعی تو رجلن شجاعن یو رو تا اینجا استاره تمام و یو کشش رو و یو کشش رو و یحمل و سلاح اگه یک تشریح روحانی نیابی به تنهایی می میشد ترشید و یحمل الصلاح به تنهایی می میشد تجرید حالا دوتا با هم اومده میشه چی استعاره مطلقه از نوع بی. من اینو در ضمن مثال درس رو کامل براتون گفتم فلسفه شم گفتم حالا دوتا تا تفسیر الف تفسیر یک استعاره مطلقه از نوع الف در کلام بسیار بسیار زیاد و از نوع به خیلی کم است یعنی اگر 100 تا استاره مطلق داریم 90 تاش از نوع A 80 تاش از نوع یک، که هیچ کدوم را ندارند؟ 10 درصد 20 درصدش از نوع B که هر دو رو داره این تفسیر اول تفسیر دوم موضوع این است که ملائم مشبه و مشبه به هر دو در کلام باشد یعنی در نوع ب ها در نوع به موضوع این است که ملائم مشبه و مشبهمون به هر دو در کلام باشد و این که و این که تعداد هر کدام برابر با دیگری یا بیشتر است ملاک نیست ملاک نیست یعنی تو این نوع دومه مطلقه ما میگیم ملائم مشبه هست ملائم مشبه هم هست تمام شون ملائم هر دوتا هست میشه مطلقه حالا یکی بیاد بگه ملائم مشبه به دو به دوتا لفظ اومده ملائم مشبه یه است. پس این دو یکه نه اینا دیگه نیست یا ملائم هر دوتا نیست میشه نوع علف. یا ملائم هر دوتا هست میشه نوع به حالا این ملائم هر دوتا هست دیگه نمیشمریم کدومش بیشتره کدومش کمتره مساویند آه؟ تعداد ملاک نیست درس به طور کامل تمام شد یعنی همش همین بود اگر بعد از این بخواهیم بخونیم بقیهش مثاله ببین مثال بخون 100 تا مثال درست شد حالا بیایید داخل کتابتون توی قاعده قواعد درس میگه ال حالا من اینا رو فارسی گفتم، با مثال زدم، توضیحاتشو دادم، دلایلشو آوردم. بحثم سر اینی که شما یاد بگیرید دیگه. حالا ما اینجا دوباره داریم عربیش هم میخونیم، ترجمه هم باز تکرار تکرار. علی استعارت المرشهتو. استعاری مرشه کدومه؟ ما زکرم معها، اونی که ذکر شده به همراه ازداره. یعنی بعد از تموم شدنش، ملائم المشبه بهید. ملاائم و مناسب مناسب با ملاائم یکی ملاائم و مناسب مشبعنده لفظی که ملاائم مشبع دوم استعاره مجرده موضوع ما ذکرم بها اونیه که ذکر شده به همراه استاره ذکر شده ملاائم مشبع بعد از اینکه استاره تمام شده ملام مشبع ذک شده ملاهمه مشبع سه الاستارت المطلقه ما خلط من ملاعمات المشبه بهی اول المشبه اونیه که ملاعمات مشبه یا مشبه به رو در کلام ندارد خالی است از ملاعمات مشبه هم به که بشه ترشید یا ملاعمات مشبه که بشه تجرید هیچ کدوم ندارد این الان تعریف استاره مطلقه نوع علفه که هیچ کلمه‌ای نداره بعد یادتون باشه من گفتم نوع الفش خیلی زیاده یعنی 80 درصد 90 درصد نوع بهش کمه که هر دو رو داره اینو آورده تو پایین گفته نگاه کنید اون آیه یک. من نوع الاستعاره المطلقه یکی از انواع استعاره مطلقه نوع دومش نوع اینه شینه ال و الی استعاره ای است که تشمله شامل است. الان ترشیه و تجرید من هم ترشیه داره هم تجرید داره من اون الف و به الفش چون زیاده تو متن برده بش رو چون کمه گفتیم در حد دویس ترصده تو هاشیه ذکرش کرده مثالم براش داد. که منم مثال براش براتون ذکر کردم از مثالهای خود پس من نوع استعاره مطلوبه استعاره التي تشمل على و تجرید معنی نوع به این قاعده ای که الان داریم میخونیم اینو من تو متن براتون توضیح دادم فارسیشو شو نوشتیم گفتیم ما ترشیه و تجرید رو از کجا شروع میکنیم یعنی بعد از اینکه استعاره تموم شد بعد گفتیم استعاره کی تموم میشه گفتیم موقعی که قرینش رو میگیره یعنی وقتی قرینش رو دریافت کرد دیگه استعاره تموم شد درست شد پس بنابراین یه موقع اشتباه نکنید که قرینه استعاره رو جز ملاعمات حساب کنید اول استعاره بیاد قرینش هم بیاد تمام شد بعد از اینکه که قرینه تمام شد میگیم اینجا استعاره تموم بعد از اون نگاه میکنیم که آیا ملائم با مشبهن به داره که بشه ترشید یا ملائم با مشبه داره که بشه تجرید یا ملائم با هر دو رو نداره که بشه مطلق نوع یک الف یا ملائم با هر دو رو داره که بشه مطلق نوع به دو پس غرینه رو نباید حساب بکنید حالا توی استاره مسرحه نگاه کنید استاره مسرحه قرینش همیشه ملائم با مشبهه رعی و اصدا یحمل و سلا. قرینش گرینش ملائمه توی استاره مکنیه نگاه کنید قرینش همیشه ملائم با مشبهان بهه چون یکی از لوازم خاصه مشبهان به و میاریم اسناد میدیم پس مبادا قرینه مصرحه رو تجرید کنی و قرینه مکنیه رو ترشیح کنی قرینه رو ورش کن بعد از قرینه نگاه کن ببین آیا ملائم با مشبه هست و مشبه به یا نیست این همین رو میگه میگه لایو اتبرو اترشیحو او تجریدو الا بعد اند تتمل استعارتو ترشیب و تجرید اعتبار نمیشه مگر بعد از اینکه استعاره تمام بشه چجوری به استیفا ها به این که استعاره اخز کند قرینه ها قرینه خودشون لفظیتن و حالیتن حالا قرینهش بیاد ما قبلا گفتیم قرینه دو جوره یا لفظیه است یا حالیه از غیر لفظیه خلاصه قرینهش که اومد استعاره تمام شد از اونجا به بعد بحث ترشیح و تجرید و اطلاق شروع میشه و هازا و برای همین خاطر لا تو سما قرینت و تصریحیت برای همین مبادا بیاید قرینه استار تصریحیت بگید استاری مجرده چون قرینش همیشه ملائم با مشبهه مثل رعی تو هستدن یحمل و سلا یحمل و سلا ببینیم یا شد تجرید نه ولا قرینه تل مکنیت ترشیه ها مواد قرینه مکنیت رو ترشیه حساب کنی ها. قرینه مکنیت رو چی حساب کنی؟ ترشیه اصلا و عبد همچین چیزی بگید نیست ولا قرینه تل مکنیت ترشیحا. تا اینجا تموم شد حالا بید توی امثله نگاه کنید دیگه مثاله چند تا مثال زده شیشتا تا شیشت تا مثال زده ستای اولی مصرح هست ستای دومی مکنیه است حالا چرا ستا ستا خب معلومه مرشحه مجرده مطلقه دوباره مرشحه مجرده مطلق حالا مطلقه باید دوتا مثال می نه دیگه اون همون که تو متن برده مطلقه نوع یک و مثال زده مطلقه نوع دو نوع به اصلا براش مثال تو اون هاشیه ذکر کرده گفتیم در حد ده درصد پنج درصد اما حاشیه برایش ذکر کرده که ما هم مثال زده از اون مثال از, از, از, از زبان عربی و شعر و شاهری و شاهد نگه برد پس فهمیدیم دیگه ششتا مثال حالا اگر مثال بعد هم تو نموزج بخونیم باز مثال به این مثال ها اضافه الان نگاه کنید نگاه کنید مثال یک یک اولایک که اولایک اولائه که زلالت بالهدا. فما ربحت تجارتو میگه اولایکل هم ابتدا خبر اینا کسانی هستند که اشتروا خریدند از زلالت گمراهی رو به خدا در مقابل هدایت یعنی هدایتی که خدا داده بود قرآن این هدایت رو پس زدن و گمراهی شرک رو به جاش خریدن شرک و کفر رو گرفتن دین و ایمان رو گذاشتن کنار اشتر و از ضلالت به هد حالا اینها کفر و شرک و گرفتند و ایمان رو کنار گذاشتن سود کردند. میگه فما به حد تجارت رو اینها در این تجارتی که کردن در این معامله ای که کردن سود نکردن زرن کردن اهل جهنم شدند و خوب رو از دست دادند و مایه بدبختی خودشون رو گرفتند. خب اگر نگاه کنیم اینجا اشتراو یعنی خریدند یعنی من پول بدم یه چیز بخرم میشه اشتراو زلالت و هدا که زلالت که کالا نیست که من بخرمش هدا هم پول نیست که من بدم درست اینجا خریدند باید چی میگفت یعنی به جای اشتره و باید چی گفته میشد باید گفته میشد اختارو انتخاب کردن اختارو اختیار کردن اگه گفته بود اولای که الازین اختارو از زلالت ابل زلالت رو به جای هدایت اون باید می شود. یا میگفت استبدلو تبدیل کردند اون. اختارو خوبه حالا استبدالو هم مثل اختارو یه لفظ بگیم که تو زهنتون اگه گفته بودن اختارو هیچ مشکلی ما نداشتیم اختارو از زلال تا بالخدا. هیچی نبود پس اینجا اختارو تشمی شده به اشتره و. اختارو هست شده اشتره و جاش میشسته قرینش چیه؟ از زلال تا بالخدا. از این ما فهمیدیم که اشترا به معنای اختار بود اینم قرینه خوب تا این بلهودا قرینه تموم شد بعد میگه فمار فما ربحت تجارتهم سودی نکرده تجارت اینها ربح یعنی سود تجارت یعنی معامله این دوتا لفظ ربح و تجارت این جمله با اشترو و سازگاره یا با اختارو سود کردن و خرید و فروش کردن تجارت با اختارو گزیدن سازگاره ملائمه یا با اشترو قطعا با اشترو خریدن پس میشه ملائمه با مشبه هم به و استاره ما استاره بگید مرشهه نوع استارمون چی بود؟ مصرحه چون اختارو تشبیش شد به اشتراو اختارو هست شد اشتراو جاش نشست قرینش هم از زلالت بالهدا استاره مسردهه حالا چون در فعل بود تبعیه پس استاره مسردهه تبعیه و از نوع مرشهه مرشهه چرا مرشهه؟ چون تجارت و رب ملائم با تجارت و رب ملائم با بگید تجارت و رب ملائم با اشتراق هستش ملائم با اشتراق هستش خوب، اینو فهمیدیم یعنی الان اگه بخواید حساب کنید مینویسید اختارو تشوی شده به اشترو اختارو حد شده اشترو جاش نشسته قرینه از ظلالت چون مشبه جای مشبهان به نشسته استعاره مسرحه چون اشترو فعله تبعیه بعد فما رب تجارتهم تجارتو هم ملائمه با بگید ملائمه با مشبه هم به اشترو پس بنابراین میشه استاره مسرحه تبعیه مرشد یه تمام شد حالا یه نکته ای رو ما از قبل براتون بکیم برای که یه مقدار تمرین هم کنزه باشید این مال این تیکه که خوندید و تمام شد نگاه کنید مگر ما نگفتیم مگر ما نگفتیم هر استعاره مصرحه تبعیه ای جایز است در غرینه آن استعاره مکنیه اصلی جاری کنیم نگفتیم دیگه درسمون بود هر استعاره مصرحه تبعیه جایز است در غرینه آن استعاره مکنیه اصلی جاری کنیم. خب حالا می‌خوایم اینجا جاری کنیم. اینجا جاری کنیم. اگر بخوایم اینجا جاری کنیم، باید بگیم چی؟ اینطور کنید قشنگ یادداشت کنید. بگیم ازلالت از بلهدا تشبیه شده به از سمن سمن با سه نقطه و مصمن با سه نقطه یعنی پول و کالا از زلالت بلهدا تشبیه شده به سمن و مصمن از سمن و یعنی پول و کالا بعد پول و کالا سمن و مصمن حذف شده یکی از لوازم خاصه پول و کالا چیه؟ اشتره و خریدن برای زلالت و اثبات شد این اثبات لازم هم میشه غرینه استعاره میشه مکنیگه چون زلالت و هم اسم جامده میشه اصلیه با بود چیزی نیست آقا زلالت و هدا تشبیه شده به پول و کالا پول و کالا شده یکی از خصوصیات آن که خریدن باشه اشتراو برای این زلالت و هدا ثابت شده شما ببینید نوشته اشتراو و زلالت همین درست؟ این میشه استاره مکنیه اصلیه بعد حالا فمار ربحت تجارت و هم این جمله فمار این ملائم با زلالت و هداست که مشبهه ماست یا ملائم با پول و کالاست که مشبهان به معادل با پول و کالاست ملائم با اوه یعنی اگر شما استعاره رو در این آیه مکنیه اصلیه هم جاری کنید در قرینش باز استعاره میشه مرشهه حالا جالب هم هست ما گفتیم که یکیش رو جاری میکنیم هر کدوم قشنگتره اینجا هر دوش قشنگه ولی خب در اشتره و که اصداری مسلحه باشه قشنگتره چون اصداری مسلحه بیشتر هم در کنام هست اکثر مفسرین اون گفتن پس این مثال رو من روش تاکید کردم برای خاطر اینکه میشد هم مثال یک گروه یک باشه هم مثال یک گروه دو باشه در غرینش استعاره جاری کنیم که تکرار بشون. پس اما اونی که کتاب آورده مثال اختارو تشبیه شده به اشتره غرینه از زلانتا بالهدا اختارو هست شده جاش نشسته، نشسته مصرحه طبعیه فما ربه تجارتهم تجارتو هم ملائمه با مشبهنده به و استعاره ما شد استعاره مرشهه استعاره مسرحه تبعیه مرشه حالا داخل کتابتون رو نگاه کنید تو بحث البحث فل امثلت او را استعالاتون فی اشتراو به معنی اختارون در اشتراو و به معنای بگید اختارو مشغل شده نه؟ بعد بیاید پایین سخت پایین تره میگه و اذا تعملت على استعاره رءیت فاذا تعملت على ال استعاره الاولى رءیت انها قد ذکر معها شیءٌ يلائم المشبه به اگر دقت کنی استاره اولو میبینی که تومون ذکر شده همراه با استاره وقتی تمام شده چیزی که ملایم مشبهان به و هاذ الشیء هو فما رب حد تجارتو هم. اونم اونیه که فما به حد بگید تجارتو هم این رو ببینید. حالا وقتی که ملائمه با مشبه هم بهتر کلام هست به این گفتن مصرحه طبعیه بگید مرشه مصرحه طبعیه مرشه مسائل رو خوب دفت کنید تمرین ها رو یعنی اون جزوهی که بهتون دادم کامل نگاه کنیم قواعد درس یعنی من دیگه بعد از این درس گفتم فقط مثال بکنیم تطبیق میکنیم تمرین میکنیم یعنی تمرین حل تمرین که انشالله جلسه آینده این درس تمام میشه و درس قبلی هم اون استعاره در حرف تبعیه در حرف با هم میگیم بعد انشالله تعالی وارد بحث بعدی استعاره خواهیم شد درست شد وارد بحث بعدی استعاره میشید که یک درس دیگه بیشتر از استعاره اون موقع باقی نمونده که استعاره باشه بحث استعاره تمام میشه موفق و معییت باشید انشاءالله سعی کنید که از فرصت استفاده کنید از وقتتون خوب استفاده کنید و این مباحث رو بفهمید و اگر فهمیدید امکان اینکه از فراموشش بکنید اصلا نیست و راحت میتونید از پس همه مطالبی که هست بیایید و زیبایی های سخن رو درد کنید روز شما بهخیر باشه انشالله باز هم میگم از وقت خودتون استفاده کنید در پناه خداوند پیروز باشید موفق و منصور خدا نگهدار و سلام علیکم و رحمت الله و برک.